از گروه جوان و فرهنگ به نام خالق شب افسانه و حقیقت سلام افسانه ها و قصه ها از جلوه های مهم فرهنگ مردمان که عمری به درازی عمر تاریخ دارند. این هفته افسانه ای رو از مردمان استان فارس براتون در نظر گرفتیم به نام افسانه ککالتی برگرفته از کتاب قصه های مردم فارس گردآوری آقای ابوالقاسم فقیری روزی روزگاری در زمانهای قدیم در شهر زیبای شیراز هفت برادر زندگی میکردن آخرین و کوچکترین برادر چون خیلی ریزمیزه بود و برادرای دیگه اونو یه نصف آدم حساب میکردن به ککالتی معروف بود که به معنی برادر نصف است شش برادر بزرگتر همگی عاشق دختر پادشاه بودن و روز و شب در این فکر بودن که یه جوری به خواستگاری دختر پادشاه برن و بالاخره یکیشون داماد پادشاه بشه خلاصه ها. یه روزی ششتا برادر به راه افتادن که برن خواستگاری دختر یکی یدونه پادشاه اونا رفتن و رفتن تا به آسیابی کن و می رسیدن مرد آسیابون به ششتا برادر گفت آخ باشه کجا با این همه عجله ها برادرها گفتن در این میریم خواستگاری دختر پادشاه آسیاون خندید و گفت ولی پادشا یه دختر که بیشتر نداره برادرها گفتن میدونیم میدونیم یکی از ما هم داماد پادشاه میشه این بستگی به نظر دختر پادشاه داره که کدوم یک از ما شش نفر رو به عنوان همسر انتخاب کنه آسیابون گفت من برای شما یه شرطی میذارم اگه موفق شدین دختر پادشاه همسر شما میشه و اگه موفق نشدین بهتر از همین راهی که اومدین برگردین و خودتونو رو به درد سر نندازین. برادرها همه گی گفتن چه شرطی؟ آسیابون گفت من 100 کیلو آرد و 100 کیلو نمک رو خمیر می کنم و با اون مقدار زیادی نون تهیه میکنم. کنم. اگه شماها تونستید همه اون نونا رو بخورین، برنده این و با خیال راحت به خواستگاری دختر پادشاه برین و مطمئن باشین یکی از شماها داماد پادشاه میشه. برادرها پوزخندی زدن گفتن وا این که کاری نداره آسیابون اتفاقاً ما خیلی هم گرست نایی. آسیابون شروع کرد به پختن نونا و چند ساعت بعد خرواری از نون در مقابل ششت برادر خود نمایی میکرد برادر را شروع کردن بخوردن اما هر کدومشون بیشتر از یه نون نتونستن بخورن. چون نونا اونقدر شور و پرنمک بود که از گلو پایین نمیرفت آسیابون که دید برادرها نتونستن نونا رو بخورن، روی کرد مونا و گفت ها،, ها ها شما شرط و بختیم، بهتر از خستگاری دختر پادشاه صرف نظر کنین و به ولایت خودتون برگردید برادرها از این حرف آسیابون سخت اصبانی شدن و گفتن اصلا، اصلا آسیابون تو چه کاری که برای ما تکلیف میکنی ها؟ ما تو هم اشتباه کردیم به حرف تو گوش دادیم. حالا از سر راه ما برو کنار برو کنار بذار به راهمون ادامه بدیم برو کنار آسیامون گفت ها میلی خودتونه باشه میرم کنار ولی من میدونم هیچ کدوم از شما شش نفر داماد پادشا نمیشین اینو مطمئن باشین برادرا در حالی که از دست آسیابون عصبانی بودن با شتاب راهشون رو گرفتن و از اونجا رفتن بله شش برادر رفتن و رفتن به به ای رسیدن و چون خیلی تشنه بودن با دست شروع کردن به نوشیدن آب اتفاقا دختر پادشاه اونا رو دید و به محض دیدن اونها پدرش یعنی پادشاه رو صدا زد و گفت باد میاد، قبار میاد، شش تا کاکا سوار میاد پادشاه پرسید الان کجان دخترم؟ دختر جواب داد سر چشمه درن قلوب قلوب با دست آب می نوشن. پادشاه گفت. بخند تا بخندیم. دختر باز گفت. باد میاد، خبار میاد، شش تا کاکا سوار میاد. پادشاه پرسید. الان کجان دخترم؟ دختر جواب داد. کنار باغ انگوری. پادشاه پرسید. انگور رو دونه دونه می یا خوشه خوشه دخترم؟ دختر جواب داد دونه دونه؟ پادشاه گفت بخند تا بخندیم چند لحظه بعد دختر دوباره گفت باد میاد قبار میاد تا کاکا سوار میاد پادشاه پرسید حالا کجان؟ حالا کجان دخترم؟ دختر جواب داد دم قصر پادشاه فرسید در میزنن یا میخوان در بشکنن دختر جواب داد در میزنن پادشاه گفت بخند تا بخندیم پادشاه دستور داد در قصر رو به روی تا برادر باز کنن اونا با تعظیم و احترام وارد قصر شده شیش برادر وقتی وارد قصر پادشاه شدند از شکوه و جلال قصر به حیرت افتادند پادشاه به شیش تا برادر گفت بگید ببینم برای چه کاری اومدید برادرها جواب دادن قربان قربان ما جسارتا جسارتا برای خواستگاری دخترتون اومدیم پادشاه سری و گفت مم. که اینطور. پس شما برای خاستگاری دختر من به اینجا آمدید خوب، من دخترم رو با هفت شطر لعل و جواهر به یکی از شما میدم اما اما, اما یه شرط داره برادر را یه صدا گفتن چه شرطی قربان هر شرطی باشه قبول میکنیم خب اجازه بدید اینو بگم که پادشاه گربهی داشت که خیلی زرنگ بود و کارهای عجیب و غریبی انجام میداد. اون چراغی روی دست می گرفت و شب تا صبح چراغ رو روی دست نگه می داشت. حالا ادامه یفزان رو برتون نخم می بله. پادشاه دستور داد گربه رو آوردن. بعد چراغ رو روشن کرد و روی دست گربه گذاشت برادرها از دیدن گربه چراغ به دست متعجب شده بودند و حیرت اونا رو به سکوت و خاموشی کشونده بود پادشاه گفت شرط من اینه که هر کدوم از شما کاری کنید که این چراغ از دست گربه من به زمین بیفته. هر کدوم از شما که موفق به این کار شدید من دخترم رو به عقد اون در میارم وگرنه دستور میدم شما رو به زندان قصر بندازن شیشتو برادر به پادشاه گفتن قربان قربان به ما چند دقیقه مجال بدین تا با هم مشورت کنیم پادشاه پوزخندی زد و گفت هر چقدر دلتون میخواد مشورت کنید و شیشتو برادر به گوشه‌ای از قصر رفتند و فکرشون رو شیشت و برادر هرچی تلاش کردن نتونستن کاری کنند تا چراغ از دست گربه پادشاه به زمین بیفته و طبق شرط پادشاه راهی زندان قصر رو شدند خب حالا شیشتا برادر رو توی زندون افسونیمون بذاریم و بریم سراغ برادر کوچیتر یعنی کاکالتی کاکالتی وقتی دید از شیشتا برادرش خبری نیست شستش خبردار شد که حتما برای اونها اتفاقی افتاده بنابراین فورا سراغ آهنگر ولایتشون رفت و گفت فوراً برای من یه خنجر تیز، یه پودک و یه اسب خوب و تیزپا آماده کن. آهنگر گفت ای به چشم. و در عرض چند ساعت اون چه رو که کاکلتی خواسته بود براش آماده کرد. کاکلتی هم سوار بر اسب تیزپا شد و برافتاد. کاکالتی توی راه به چند تا موش برخورد کرد. به خودش گفت آه، بهتر این چند تا موش رو بگیرم و با خودم ببرم شاید به درد کارم بخورن خلاصه موشها ها رو گرفت و اونا رو توی آستیناش خایم کرد و به راه خودش ادامه داد رفت و رفت تا رسید به همون آسیاب کهنه و قدیمی آسیابون تا کاکلتی جدید دید پرسید آه کجا خیر باشه کاکالتی جواب داد خیره خیره دارم میرم خاستگاری دختر پادشاه آسیابون پوزخندی زد و گفت اون شیش تا برادرت نتونستن اون وقت تو با این جسه و هیکل ریزه میزد میخی بری خواستگاری دختر پادشاه بهتر خودتو به درد سر نندازی و از همین راهی که اومدی برگردی کاکالتی خندهی کرد و گفت عجب عجب که بهتر برگردم ها؟ آسیابون گفت من به ششتا برادرتم گفتم نرن ولی اونا گوش ندادن و الان توی زندان پادشاه اسیر کاکالتی گفت زندانن؟ برای چی؟ آسیابون گفت برای اینکه من از اونا خواسته بودم کاری رو انجام بدن ولی اونا نتونستن کاکالتی با کنجکاوی برسید چی کاری؟ آسیابون سری تکون داد و گفت آه هیچی هیچی وقتی تو هم نمیتونی چرا بی خودی خودم خسته کنم و بگم بگذری ولی کاکالتی دستبردار نبود و اونقدر اصرار کرد تا آسیابون گفت من صد کیلو آرد و صد کیلو نمک خمیر میکنم و نون می پسن. میتونی اونا رو بخوری ها. بعد بدون اینکه منتظر جواب کاکالتی بمونه خودش گفت <تصفح> البته که نمیتونی نمیتونی بخوری ولی کاکالتی با صدای محکم گفت یقین داشته باش من این کار رو انجام میدم و از آسیابون خواست که دست به کار بشه و نونا رو بپسه و آسیابون هم شروع به کار پختن کرد. کاکالتی تا اونجا که تونست نونا رو خورد و بقیه رو هم به موشا داد که بخورن آسیابون که دید کاکالتی تمام نونا رو خورده با خوشحالی گفت جوون جوون برو که موفق میشی کاکالتی هم به راه خودش شد داد رفت و رفت تا رسید به چشمه یاب چون نونا شور و پرنمک بودن و کاکالتی اتش زیادی داشت دهنش رو توی آب چشمه کرد و حالا نخور کی بخور دختر پادشاه از روی پشت بوم اونو دید پادشاه رو صدا زد و گفت باد میاد قبار میاد کاکالتی سوار میاد پادشاه پرسید کجاست؟ دختر جواب داد سر چشمه پادشاه پرسید آب آبر قلوب قلوق میخوره یا دهن به آب گذاشته ها دختر جواب داد دهن به آب گذاشته پادشاه گفت گریه کن تا گریه کنیم چند دقیقه بعد دختر گفت باد میاد قبار میاد کاکالتی سوار میاد پادشاه گفت حالا کجاست دختر گفت کنار باغ انگوری پادشاه گفت خوش خوشه, خوشه میخوره یا دونه دونه دختر گفت خوش خوشه, خوشه. پادشاه گفت گریه کن گریه تا گریه کنیم دختر چند دقیقه بعد دوباره گفت باد میاد قبار میاد کاکالتی سوار میاد پادشاه گفت حالا کجاست دختر جواب داد پشت در قصر پادشاه گفت در میزنه یا میخواد در رو بشکنه دختر جواب داد با پتک به جون در افتاده پادشاه گفت گریه کن گریه کن تا گریه کنی در قصر رو باز کردند کاکالتی با وارد قصر شد سلام کرد پادشاه پرسید آه چی میخوایی انگار خیلی عجله داری ها؟ کاکالتی به تندی گفت بره خوربان من به خاستگاری دخترتون اومدم و هر شرطی هم که بگین با کمال میل میپذیرم پادشاه گفت خوش اومدی اگه شرط منو بردی دخترم به همراه هفت بار شطرلل و جواهر مال تو و اگه شرط رو نبردی مثل برادرای دیگت زندانی میشی فهمیدی یا نه کاکلتی گفت من آمادم برمان و شرط رو میپذیرم گربه پادشاه رو آوردن چراغ رو روی دستش گذاشتن و طبق قراری که داشتن کاکالتی باید کاریم میکرد که چراغ از دست گربه بیفته پاسی از شب گذشت پادشاه چرتش گرفت کاکالتی در فرصت مناسبی یکی از موشهایی رو که همراه داشت جلوی گربه انداخت ولی گربه توجهی نکرد کاکالتی یکی دیگه از موشا جلوی گربه انداخت اما گربه همچنان بدون توجه به موشها چراغ رو روی دستش نگه داشته بود کاکالتی یکی دیگه از موشها رو جلوی گربه انداخت گربه هم چراغ رو رها کرد و موشها رو دنبال کرد و رفت کاکالتی پادشاه رو بیدار کرد و گفت قبله یالم بالاخره گربه شما چراغ رو به زمین انداخت پادشاه از خواب بیدار شد رفت و دید بله گربه چراغ رو رها کرده به معلوم نبود کجا رفته پادشاه دستی برشونه کاکالتی زد و گفت آفرین تو برنده شدی حالا بگو ببینم چی میخوایی کاکالتی گفت قبله یالم من تقاضا دارم تا برادرم رو از زندان قصرتون آزاد کنید پادشاه هم دستور داد که برادرای کاکالتی رو آزاد کردند. اون وقت دخترش رو به عقد ککالتی در آورد و هفت بار شطور لعل و جواهر به ککالتی دادند. و همینی خوشحال به طرف ولایتشون برافتادن اما اما اما بشنوین که در بین راه شیشتا برادر با خودشون چی گفتن ما شیش نفر نتونستیم شرط پادشاه رو انجام بدیم اون وقت اون وقت این برادر نصفه ما با این جسه گوچیکا ریزه میزشت داماد پادشاه شد میبینی؟ برای ما ننگ داره این کار اوه. یکی از برادره گفت اوه. یه فکری به سرم زده بهترین راه نابودی کاکالتیه همه یه برادره حرف برادر بزرگتر رو تعیید کردند و تصمیم گرفتن کاکالتی رو سربرینگس کنن اونا در بین راه به چاه آبی رسیدن همگی تشنه بودن از کاکالتی خواستن که داخل چاه بشه و برای اونا آب بیاره کاکالتی بیچاره وارد چاه شد و برای برادرش آب بالا فرستاد برادرها آب رو نوشیدن و وقتی کاکالتی خواست بیاد بالا بله تناب رو بریدن و کاکالتی ما به ته چاه کاکالتی وقتی ته افتاد ناامید نبود و گفت خدا بزرگه خدا بزرگه حتما نجات پیدا میکنم کاکالتی نگاه کرد دید انگار قسمتی از چاه فضایی باز و خالی داره کاکالتی بیدرنگ وارد اون شد و انگار وارد دنیای ای شده خوشحال شد رفت جلوتر تا رسید به یه چشمه که آب زیادی داشت ولی اجده هایی جلوی آب رو گرفته بود و مانع از اون بود که آب به طرف شهر روان بشه کاکالتی دید که دختری با یه سینی پر از گوشت و برنج به طرف چشمه میاد دختر به کاکالتی نزدیک شد و سلام کرد کاکالتی گفت ای دختر جوون این گوشت و برنج رو برای کی میبری؟ دختر گفت این غذای اجده هاست. ما سالهای سال که جمان اسیر دست این هستیم هر ماه باید دختری برای اژدهها غذا ببره اژدهها برای خوردن دختر و غذا از این پهلو به اون پهلو میشه در نتیجه مقداری آب به طرف شهر روان میشه من من دختر پادشاه هستم و امروز نوبت منه که برای اژدهها غذا ببرم کاکالتی گفت این غذا رو بده من بخورم که خیلی گرستم. بعد هم خودم خدم خدمت اجدهان میرسم. بده من غذا رو. کاکالتی سینی غذا رو از دست دختر گرفت و شروع به خوردن کرد. بعد از اینکه کاکالتی سیر شد بلند شد که به سراغ اجده بره. دختر گفت. ای جوان خیلی به هوای کشتن اجده به اینجا اومدن ولی هیچ کدوم موفق به کشتن اجده نشدند که هیچ تازه چون خودشونم از دست دادن کاکالتی گفت ولی من اژدها رو نابود می کنم. بعد سراغ اژدها رفت خنجر رو کشید و به اژدها حمله کرد اجده رو کشد اونو به دونیم کرد و آب به طرف شهر برافت دختر پادشاه با خون اژدها نشونهای به خنجر کاکالتی گذاشت آب به طرف شهر که روون شد مردم خوشحال شدند و خبر کشته شدن اژدها به گوش پادشاه رسید پادشاه اعلام کرد که همه شهر رو چراغونی کنند و جشن باشکوهی برگزار کند پادشاه بعد از نابود شدن اجدها اعلام کرد کسی که اژدها رو کشته و دخترش رو از مرگ نجات داده به قصد بیاد تا هر خاصی که داشته باشه برآورده کنه خیلی‌ها بودن که ادعا کردن اجدها به دست اونا نابود شده اما دختر پادشاه گفت نه پدرشان اینا هیچ کدوم اون جوون قهرمان نیستن اون جوونی که اژدها رو کشته روی خنجرش یه نشونی داره در این موقع کاکالتی وارد قصر پادشاه شد و دختر با دیدن اون فریاد زد پدر خودشه این همون جوونیه که اژدها رو کشته من روی خنجر اون با خون اژدها یه نشونی و یه علامت گذاشتم و پادشاه از کاکالتی خواست که خنجرش رو به اون نشون بده بله روی خنجر کاکالتی علامتی با خون بود پادشاه گفت ای جوان کیستی؟ از کجا میایی و چی میخوایی؟ کاکالتی تمام قصی زندگیش رو برای پادشاه تعریف کرد پادشاه گفت من وظیفه دارم به پاس کمک بزرگی که به مردم این دیار کردی و دخترمو از مرگ نجات دادی هر خواستهی داشته باشی برآورده کنم حالا بگو چی میخوایی؟ کاکالتی گفت قربان، من فقط میخوام به دنیا خودم برگردم، همسرم در انتظار منه پادشاه گفت، قصد نخور، قصد نخور که به آرزت میرسی و بعد دستور داد که سیمور برای بردن کاکالتی آماده بشه در عرض چند دقیقه سیمور اومد و کاکالتی رو, رو روی پشتش سوار کرد و در آسمون به پرواز دارم ساعتی بعد کاکالتی به شهر خودش رسید دختر پادشاه که همون همسر باوفای کاکالتی باشه با خوشحالی به پیشوازش اومد و هفت شبانه روز جشن گرفتن کاکالتی برادراش را هم بخشید و همگی در کنار هم سالهای سال به خوشی زندگی کرد سرامز افسانه کاکالتی از مردمان خونگرم و مهربان شیراز که امشب براتون نقد کردم برگرفته از کتاب قصه های مردم فارس گردآوری ابو فقیری هزار افسان کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت سالپور، پور ویراستار سحیلا کریمی اجرا مهران دوستی صدابردار منیری قرخانی یک کنندنده زهرا عبدالله زاده تا افسانی دیگر بترود